با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و موجیان نزیز تلویزیون رنگین کمان بخش 26 و گفتارم رو درباره کسروی شروع می کنم. در اواخر گفتار بخش بیست و پنجم بنده مطلبی رو شروع کردم به نام کتاب و یا جزوه کوچکی بود به نام خدا با ماست که البته بنده این کتاب رو در اختیار ندارم. حال اگر پیدا کردم در بین کتاب‌هایم در جلسات آینده خدمتتون معرفی خواهم کرد. این کتاب یا این جوزه مقاله است که کسوی در زمستان 1121 به قلم کشیده است و این در این باره است که شخصی از او سوال کرده که آقای کسوی شما از طرفی به خدا اعتقاد دارید و معتقدید که کارها با اراده خدا حل میشه و از طرف دیگه شما به علم هم اعتقاد دارید مدعی هستید که اعتقاد دارید آیا شما تلفیق این دو فکر متضاد رو چگوده میتونید بیان بکنید در جا که کسروی رو میبینیم که پیشرفت های زیادی کرده دیگه اون ملای متشره ارتجاعی دوران گذشته نیست کسروی شده ور چارچوبه در پای به پای آگاهان اجتماعی که مطالب رو میدونه و از نظر عقیدتی هم ترخیل پیدا کرده ببینید چه جواب داده میگه که آن آقا اول سؤال اون طرفی رو که یک چونی سؤالی مطرح کرده من اینجا دوباره مطرح میکنم آن آقا میگه که شما بارها این آر... آراستگی و وجود نظم و ترتیب را در کارهای جهان <تصفح> ببخشید در کارهای جهان یاداوری کردید و همین نظام بزرگ آفرینش را دلیل بر وجود آفرینگار میدانید که انگیزش این دستگاه عظمت و قدرت با اراده اوست و نیز بارها گفته اید هیچ کاری در این جهان بی انگیزه نتواند بود عمل و عکس الامل از هم میگویید چون ما هوادار راستی ها هستیم خدا با ماست من میگویم با وصل اینکه که ما در تحت تأثیر الال و اسباب در این جهان زیست میکنیم و نتیجه هر کاری گذشته از کوشش بستگی به علل و اسباب موجد و مولد آن کار دارد چگونه خداوند با کسانی که پیروی از اوامر آیینش مینمایند همراهی و یاوری می‌کند و با کدام وسیله به بندگانی که او را خوشنود میگردانند کمک و یاوری می‌نماید. پرسش خیلی پرمعناست و عمیقه و از چرا آرزو و خاستشان را اجابت نموده و مقاصدشان را از لحاظ اینکه نزدیکتر به او هستند انجام میدهد در صورتی که دستگاه طبیعت مسیر طبیعی خودش را سیر می نماید و تنها علل و جهاد موجد معلول هستند و این قاعده استثناء نسبت به موجودات ندارد شما یا باید به خدا منتقد باشید که همه کارها را انجام میدهد و یا باید طبیعی باشید به طبیعت اعتقاد داشته باشید حال ببینیم کسری این مطلب به این پرسش پیچیده فلسفی و علمی چه جواب داره از جواب کسوی متوجه میشه که به یک مرحله عالی همطور کرس کردم حضورتون آگاهی نسبی خوب کسوی در این تاریخ خسیده است میگوید این بسیار راست است که در این جهان هیچ چیزی بی انگیزه نتواند بود هیچ کاری بیرون از آئین سپر رخ نتواند داد این که ما میگوییم خدا با ماست؟ خواستمان آن است که خدا این کار ما را خواسته و زمینه پیشرفت آن را با انگیزه و افزار به روی ما گشوده. البته بعده فکر میکنم دیگران هم نمیتوانند قبول کنند که این مسئله را شما یا به طبیعت باید معتقد باشید یا به خداوند در پایین کسلی کس باز به این مطلب هم جواب میده میگه که یکی از راه افزارسازی و افزودن به شکوه زندگانی و جلو رفتن در دانشها در دانش و آگاهی ها که می باید آن را راه دانش ها بنامیم. یک راهش این است ما در طبیعت دو تا راه داریم یکی راهشی از سریع دانش می خواهیم بریم و همه چیز رو بفهمیم چیزای رو اون که دانش و علم به ما؟ نشون میده راه میده بدونیم یکی دیگر از راه افزارسازی و افزودن شناختن معنی راست زندگانی و آدمگری و زیستن به آین خرد و بهره یافتن از آسایش و خرسندی که میباید آن را نیز راه دین بخوانیم. خب باز کسروی در اینجا منطقش خانه کننده نبوده ورای یک آدم طبیعی، یک آدم علمی دو تا مسئله متضاد رو در کنار هم التقاط داده یا با این یا با اون یکی رو باید انتخاب میکرد بران در مورد اول یعنی راه دانش ها وی به طور فازلانه ای از طریق ارائه تئوری های مربوط به علم مردم شناسی، پیدایش جهان و فرهنگ و تمدن، مسیر پیشرفت بشر را از پیدایش تا امروز ترسیم می کند و کلیگه تیوری های مربوط به پیدایش سپه رو حیوان و انسان را در بست می پذیرد. همچنین ارتباط آین خدا با تئوری داروین رانیز تقریبا می پذید. ارس کردم که هرگز حاضر نبود به که اصلیت انسان از میمونه میگفت این امکان نداره ولی اینجا هم متوجه میشیم که یه مقداری از این مطلب رو هم پذیرفته او میگوید که به گفته دانشمندان خورشید و زمین و کره های دیگر در آغاز خود یک توده بخاری میبوده که در فضا میستاده ولی ناگهان نکاتی در آن پیدا شده و به گرد خود چرخیدن گرفته پس از زمان بسیاری تکه از آن جدا شده و این نیز کره ای گردیده که هم به گرد خود و هم به گرد خورشید چرخیدن آغازیده این کره زمان درازی توحیمی بوده تا هنگامی رسیده که رستنی در آن پدیدار شده سپس نیز زمان درازی گذشته تا زندگی در آن پیدا شده و جانوران زیستن آغاز کردند، سپس نیز صده های بسیاری گذشته تا آدمی رخ نموده و به زندگی پرداخته این است که دانشمندان و آفرینش میگوید در این گونه چیزهاییست که ما میگوییم دست آفریدگار در جهان نمایان است خب باز کسی نتوانست اون واقعیت ها رو خوب بیان بکنه می بینین که به طور عمقی وارد عقاید علمی شده همه چی رو می شناسه ولی در یک جایی یک جایی مشکل داره گره داره از طرف دیگه به خدا معتقده، از طرف دیگه به این عقاید معتقده، ولی در خاتمه می که تمام این مطالب رو یک خدایی هست و اون آفریده یکی دیگر از تحولات و پیشرفتهای کستوی رو در اینجا باید من بگم مگه این نیست که ما داریم پیشرفتهای فکری کستوی رو در طول زندگانیش از روی نوشته هایش بررسی می‌کنیم. خب یکی دیگر از پیشرفتهایی که داشته در مورد زن بوده در جلسه قبل یک مقداری اشاره کردم ولی کتابی داره به نام خواهران و دختران ما من این کتاب را آوردم کتاب خواهران و دختران ما نوشته احمد کسروی آنچی که من دارم چاپ چهارم است که در سال 1353 منتشر شده این کتاب 66 صفحه هست و در اونجا یکی از مسائل عمده این کتاب بررسی در مورد زن و پیشرفت او و جایگاه او در جامعه می این کتاب کتابی است که کسوی در سال 1323 به قلم کشیده است این کتاب در 66 صفحه نوشته شده <تصفح> همانطور که حضورتون از کردم و از پنج گفتار تشکیل می شود عنوان, کتاب, عنوان گفتار یکم این کتاب با تکرار می کنم عنوان گفتار یکم این کتاب در باره رو گرفتن نام دارد. این گفتار تاریخچه مختصری است از تأثب جامعه نسبت به هجاب حجاب زن در چهل سال گذشته است کسوی به وقایه تاریخی اشاره میکنه تا موقعیت زن و هجابش را در اون تاریخ معین بکنه می نویسد که در سال یکم یا دوم مشروطه 1285 مشروطه هم جام شده حالا یا سال 1285 یا 1286 در سال یکم یا دوم مشروطه در تبریز میزاست حسین خان ادالت که از پیشگامان آزادی به شمار میرفت روزنامه کوچکی با زبان ترکی به نام صحبت منتشر میکرد در یکی از شمارهای آن گفتاری زیر انوانه دنده کج برای زن نسبت داده گفتاری زیر انوان دند کج نوشته به شوخیهایی پرداخته بود که خدا زن را یعنی هوا را از دنده کج آدم آفریده و در میان سخن فهمانده بود که ما نیز باید به زنها به زنهای خود عرش گذاریم و آنها را در زندگی همراه گردانیده به انجمن ها و نشه بیاوریم آوریم از همین چند جمله آشوبی برپا گردید در تبریز مردم،, مردم بازار را بستند و به هیاهو برخاستند انجمن ایالتی که در تبریز بود ناچار شد ستوسین خان ناشره اون رو از تبریز اخراج کنند این بود اندازه رمیدگی مردم از شنیدن نام آزادی و روباز کردن زنان که ادامه میده که در تاریخ پیدایش تعول فکری مردم نسبت به آزادی های زن را همراه با پیدایش مشروطیت مطرح میکنه. میگه در دوری مشروطیت بود که زنها بیشتر آمادگی فکری برای آزادی ها و دموکراسیها ها پیدا کردن در این باره می نویسه هرچه هست می نویسه که سالها گفتگو می رفت و کم کم گوش ها پر می شد و رسیدگی مردم کمتر می گردید رمیدگی مردم کمتر می گردید در آن میان دبستانهای دخترانه برپا گردید و بسیاری از دختران درس خواندند و اینان خودشان هواخواه روباز باز کردن شدند در روزنامه ها سخنان آشکاری نوشته شد و رمیدگی, و رمیدگی مردم به یک بار از میان رفت بلکه باید گفت جنبشی به همین نام به ویژه در تهران پدید آمد جنبش زنان سپس به دوران. رزا شاه پرداخته و او را عامل اصلی کشف هجاب و آزادی زن می داند و زنان را مرحون آزادیشون را مرحون خدمات رزا شاه میشناسد می, می نویسد هرچه هست این یک کار بزرگ تاریخی بود که زنهای ایران پس از هزارها سال چادر و روبند را به کنار گذاردند و با روح باز به کوچه ها و خیابان ها در آمدند ببینید کستوی از کجا رسیده تا به کجا بالا رسیده کستوی افکارش ببینید که تحولاتی پیدا کرده در این گفتار کستوی هجاب زن را شیوه ایرانیان، باستان میداند معتقدی که در آن تاریخ مخصوص جوامع ایرانی بود که زنان حجاب صورت می گرفتن رو می گرفتن و با ارائه مدارکی این مسئله رو مطرح کرده و از قرآن و قایه یه زمان پیغمبر اسلام نشان میدهد که در اسلام اجبار در حجاب وجود ندارد بنابراین ما میبینیم که این همه خودکسی میکنن به خاطر اینکه که یک زن سر یک دختر و یا خانمی پیدا میشه ایرد میزو اشعار زیبا و شنگی در این مارد گفته که جایش در اینجا نیست ولی اصلا کس زویب از قرآن دلیل میاره آیه میاره میگو بابا در قرآن اصلا هجاب وجود نداره حالا این مسلمان ها چی میگن دلیلشون چیه من اینو نمیدونم و این سپس نظرات خود را در مخالفت با حجاب بیان داشته در این جزوه مینویسد تنها رو گرفتن با یا پوشانیدن رو در خوره عرج چندانی نیست گفتگو نیز بر سر آن نمی باشد گفتگو بر سر آن است که به دستاویز همان رو گرفتن و خود را پوشانیدن زنان از توده بیرون افتاده بودند به دستاویز همان رو گرفتن به انجمنها ها نمی آمدند از آمد های کشور و توده به یک بار نااگاه ناگا... نا نا می ماندند از دانستانی ها پاک بهره می بودند در این کشور میزیستند و کمترین دلبستگی به آن نمی داشتن و نمی داشت آن چه در ایران می بود ندامه ی حرف های آن چه در ایران می بود, می بود. ما نیز در برداشتن اینها بوده است کسروی حالا دیگه در مسیر آزادی زن قدم بر می اگر تنها رو گرفتن بودی جای چندان اندوه نبودی زنها زنهای روگیر ایران که هنوز نمونه های آنها فراوان است در خانه می نشستند و پس از کارهای بکه یا به پای منبر آن ملا و این ملا می رفتند، مخالف ملاست مخالف گفته های یاوه ملایان است کسری یا به پای منبر آن ملا و این ملا می رفتند و مغزهای خود را با گفته های پوچ آنان می آکندند و یا در روز خانی ها نشسته به سرگذشت سکینه و ربابه دل می سوزندند و سینه و یا به خانه فلان جادوگر و دعانویز رفته گره های زندگانی را با دست آنان می گوشادند پیر زنان نیز پزشک می بودند و به هر دردی شناخته شده یا شناخته نشده داروی تجویز می کردند. این می بود حال زنان مردان نیز آنان را کوتاه خرت ناص شناخته بسیار بی عز می شمامردند ما از این هاست نه تنها اظور گرفتن و نگرفتن مطالبی که گذشت کیفیت تحول افکار کسوی را نشان میده من فکر میکنم که در این مسیر که ما مستقیما جلو میریم روشن میکنیم که این مرد تا چه اندازه و چگونه افکارش روز روز به سوی بالا تغییر میکنه اگر عقیده وی راجب زن را که گفتم در قبل در مقدمه ای بر نامه در بخشهای قبلی بیان داشته بود با کتاب فوق خواهران و دختران ما که تفسیرش گذاشت بسنجیم به, به سادگی معلوم می شود که او چگونه با تعصب ها تعصبات بازمانده از دوران تربیت کودکی خیش در جدال بود ملا به دنیا اومده بود پدر مادرش ملا بودند جنگیده بود در طول تاریخش و چگونه همراه با پیشرفت زمان متحول می شود. در گذشته نیز به این مطلب اشاره کردیم که کسوی باورهایش را با خرد و با خرد خیش می سنجید هرانگاه که منطق وی آنها را می پذیرفت در درستی آن باور راسخ می گردید و از آنها با حرارت دفاع کرد که به نظر من این هم اشکال فراوانی داره خرد ها نیز ناقصن در مقابل طبیعت و در مقابل علم حالا بگذاریم لیکن اگر عبیده محکم تری در سر راهش قرار می گرفت بدون تعصب و با شهامت آن را میپذیرفت اینجاست که داره قدم جلو میذاره. متکی به خرد خود نیست اگر خرد دیگری اگر در طبیعت اگر در به وسیله علوم یه مطلب جدیدی مطرح میشد و باز با این در خرد خودش مقایسه میکرد، اون که بهتر بود میپذیرفت. متأسف نبود انسان‌هایی که فقط به یک عقیده موتقدان با حیوان هیچ فرقی ندارند انسان زاده شده برای اینکه که متحول بشه آن چیزی رو که امروز روز کودکی یک جوانی یکی قبول کرده ممکنه ده سال دیگه در نتیجه پیشامت ها در نتیجه مطالعات دیگه آن را نپذیره بدون ترس و با شهامت عرض کردم آن فکر رو میپذیرد کسری و از عقیده قبلی خیش می کرد. از این که او برای زنان و مردان کارهای آره دیگه اینجا مشکل ایجاد میکنه این برای زنان و مردان هنوز هم در این تاریخ کارهای مجزایی معتقده میگه از این که او برای زنان و مردان کارهای متفاوتی قائل بود بیشتر از این بابت هست که وی انسانی اخلاقگرا هم بود اخلاقگرایی عادات ملایم هم هست که این اخلاق گرایی از همون دوره زندگیش اومده دیگه تصور خودشون همه کار میکنن ولی در ظاهر در بالای منبرشون جانمه آزاد میکشن اخلاق گرا میشن یک جوانی را به خاطر یک کارهای فرض کنیم مشکلات جنسی و از این عرفها زیرش شاق میبرند ولی خودشون هزار جور فساد انجام میدن و کسی نیست از رو بپرسه چرا میشه از چهار ساله این قانون در مملکت ما پابرجاس بجاز مدت شانزده سال رزوشان به هر حال بدون شک اگر دشته کشین و ترسوب آدم کشان اعتراضش رو خاموش نکرده بود کسوی در سالهای بعد این مشکلی رو که نسبت به زنان داشت این تعصبی را که نسبت به زنان داشت که باید کارهاش با مردان جدا باشه اون هم از بین می رفت با این شناختی که ما در این فرصتمون از کسوی پیدا کردیم در خاتمه لازم می دانیم که مطلب نیز درباره مطالعات وی درباره نقد و اصلاحات دینی رای دهیم زیرا بنده منتقدم که مهمترین هدف اصلاحات کسوی زدودن زشتی ها و بد های ناشی از ادیان و مذاهب بود و همین امریز موجب صدور بکم ارتداد کسوی و به جانوی تمام شد با دشنب و گدوده و سر. از این تاریخ به بعد ما پیش می رویم تا ببینیم که چگونه شد که کسوی آخر سرش با همین که کردم دشنب و گدوده روبرو کردید. این درسته که کسروی به فتوای آلمان دین و به دست مریدان و متعصبان که به گناه اعتداد با کسروی درفت دادن و او کشتن ولی در عمل تمام جامعه مملکت با سران رو میگم همچنین پاین ها رو میگم با کسروی در دادن و موجب مرگ کسروی تمام این افراد بودن افراد بی افرادی که جزر امت بودند دنبال روغان چشمستهی ملایان بودند ملایان ارتداد داده بود به، حکم ارتداد داده بودند به کسروی بعد نابرین این افراد هم حمایت میکردن حاضر بودند به خاطرش بمیرند و کسانی هم که کسروی رو کشتن از این گروه بودند سواد که نداشتن ست حسین که سواد نداشت برادرش علی محمد امامه که سواد نداشت اون نه نفری که حمله کردند در بیستم اسفند به شعبه شماره هفت دادگاه و این مرد بزرگ را کشتند همهشون بی سواد بودند حکمش را اون بالا یاداده بودند بنابراین هم طبقه پایین جامعه ما در قتل کسوی سحیم بودند هم مولايان صحیح بودن و هم بقیه مردم بقیه کسانی که قدرت در اختیار داشتن صاحب قدرت بودند در اون تاریخ گفتم در بخش های گذشته متاسفانه مجبورم دوباره تکرار کنم از این پایین تا, تا اون بالا همه ضد کسویی بودند چرا برای اینکه نه تنها کسوی با دین در افتاده بود با اینام در افتاده بود فساد اینا رو بیچمرده رو برون شد کسویی یک بخصوص خصوص پس از در مقابله با جامعه بود یکی از اوصاف منحصر بفرده که از از این بود که او یک تنه به جدال کلیه زشتی ها و پلشتی های جامعه رفت و چون این صفتی در هیچ کدام از اصلاحگران قبل و بعد از وی وجود ندارد کسوی در هر زاویه و گوچه ای از کشور که سراغی از فساد و فاسد و خرافات و ارتجاب داشت بدون پروه به جدال آنهاش میشه تافت گفتی... عرض کردم که مهمترین دوره مبارزاتی کسوی به زمان پس از سقوط رزو شامر بود می شود. و حاله در بخش گذشته در بخش بیز و از عرض کردم جم. زیرا در این دوره کشور در آتش فساد و نامنی و کشت و کشتار و قهدی میسوخت لحظا کسوی در تمام گوشه های جامعه نبرد میکرد در این نبرد مقام و موقعیت افراد و اخشار برای وی مهم نبود برعکس هر اندازه که اعتبار اجتماعی فسادکاران از دید وی بیشتر بود اکسر عمل عملی تونتری در مقابل و می و فریادش بلندتر تر شد به این مطلب نیز اشاره کردم که مبارزات اجتماعی کسری از سال 1311 شروع شد در همان سال با نوشتن کتاب آین و دو سال بعد در ای بر افافنامه با تجدد خواهان اروپا دیده در افتاد در کتاب راه رستگاری امیدوارم که باشد در اینجا وگرنه جلسات بعدی میارم ندارم اینجا در کتاب راه رستگاری در جلسات گذشته نشان دادم این کتاب را خدمت بینندگان گرامی در همان سال با نوشتن کتاب را آهین کردم و دو سال بعد در مقدمه مقدمه بر افاف نامه با تجدد خواهان اروپا دیده در افتاد در کتاب راه رستگاری خرافات دینی و فرقه های صوفیگری خراباتیگری باطنیگری را زیر سال برد در کتاب ما چه میخواهیم نشان دادم در جلسات قبل نیز دوباره ادیان و فرقه دینی و ملایان مورد انتقاد مورد انتقاد شدید قرار گرفت پس از سقوط رزوشا که چندین بار امروز به این مطلب اشاره کردم او با حرارت و توان العاده بیشتری در مورد اصلاح همه جانبه جامعه کمر هممت بست و بیشتر از پیش با تعلیف کتاب ها و مقالات متعدد و ترتیب مجالس سخنرانی ها. مراکز پلیدی ها و ناهنجاری های اجتماعی سیاسی و اقتصادی کشور را مورد حمله قرار داد و آتش نفرت آنان را کسانی که مورد حمله قرار می گرفتند و برای خودشان مقامی داشتند و آتش نفرت آنان را نسبت به خود شعله بر کرد همه آنان این آدمها در زمانی که کسویرو کشتند اعتراض نکردند روز پس از قتل کسروی فکر می اینو در سخنانم گفتم 20 هم کسروی رو کشتن روز بیست م در تهران تظاهرات عظیمی از حزب توده بود که می نویسند بیست هزار نفر در اون مجلس بودن و کس بزرگ علوی به نظرم اگه اشتباه نکنم در اون جلسه صحبت کرده ساعت ها هم صحبت کرده حتی یک واژه راجع به این مرگ این مرد شخصیت و کشتار ملایان به زبان نیم ورده حضب توده همیشه دنبال ملایان بود و این تاریخ می نویسه من ده تاریخ دارم عرض میکنم خونه کسوی به هدر رفت باری میگذرم کسوی با عاشقان فرهنگ و عرفان ایرانی در افتاد در کتاب در پیرامون اسلام من این کتاب رو از دوستم چون خودم نداشتم دکتر صدرو اشرافی خواهش کردم که کتابش رو فتوکپی بکنه به من بیاره و این کار کرد و به همین دلیل در این مجلس از ایشون سپاسگزاری میکنم با عاشقان فرهنگ و عرفان ایرانی در افتاد در کتاب حافظ چه میگوید کتاب حافظ چه میگوید باز در آینده در بارش سخن خواهم گفت در کتاب حافظ چه میگوید با عاشقان فرهنگ و عرفان ایرانی در افتاد در کتاب در پیرامون اسلام علاوه بر پیشوایان دین بار دیگر با طبقه اروپا دیده در صفحه هفتش و نیز با اهل فلسفه در صفحه دومش و از دانشگاه دانشگاه ورشف گیری وزرا صفحه ده درگیر شد در کتاب ایران و اسلام کمونیستی در ایران فولداران و آزمن آزمندان ایران و اسلام کمونیستی در ایران پولداران و آزمندان کتابی که من دارم 1358 چاپ شده و در جمع 64 صفه است. بله در کتاب ایران و اسلام کمونیستی در ایران پولداران و آزمندان, آزمندان از کمونیست ها. و نیز پولداران و سروتمندان انتقاد،, انتقاد کرد ببینید چه جوری دشمنی و کینه ی اطرافیان رو به سوی خودش می‌کشید. در کتاب سرنوشت ایران چه خواهد بود سرنوشت ایران چه خواهد بود این هم است که باز من در اختیار دارم تاریخ چاپش 1357 تعداد صفحاتش به گمانم حدود صد و خورده ای در جمع چون دو قسمت سرنوشت ایران چه خواهد بود و امروز چیست ؟ یعنی دو جلد کتاب رو در اینجا گنجانی ده. در کتاب سرنوشت ایران چه خواهد بود به ست زیاددین تبا تبایی ایلات و اشایر هزم توده مجلس چهاردهم هم صدرال شافی و کابینه های پس از رزاشا حمله کرد به طور کلی نامبردگان زیر اونجه که من اسم برم نیش زهر قلم و سخن کسوی را چشیده بودن و روشن است که کینه و اداوت او را در دل داشتند و حاضر نبودند از او حمایت کنند از جان سیاسی علی حکمت وزیر فرهنگ عبدالحسین حشیش نخصوص وزیر محمد ساید مراغی وزیر امور خارجه و نخصوص وزیر صدرالشرافی وزیر دادگستری و نخصوص وزیر اسدالله مأمگانی وزیر دادگستری کریم قوانلو وسوق دولی دادور ابراهیم حکیمی نخصوص وزیر علی دشتی نماینده مجلس دکتر ایسا صدیق وزیر فرهنگ وحید تونکابنی کفیل وزارت فرهنگ، صد محمد صادق تبا تبایی، رئیس مجلس شورای ملی، صد نصرالله الله تقوی رئیس دیوان عالی کشور، سرتیب شعری و سرتیب اعتماد، اعتماد مقدم، فرماندار نظامی تهران، همه با در افتاده بودند. دکتر خوشبین، سرلشکر رزمارا، و دیگران در افتاد ببینید با چه کسایی در افتاده علت در افتادن هم روشنه بیکار نبود که به اون اون بند بکنه این فسادشون رو به روشون میکشید درباره فساد اینا سخن بیپرواه میگفت و آنها هم دشمن میشنن که بله <تص> از بلند پایگان فرهنگ و ادب فارسی و از دانشگاهی ملک و شعرهای بهار عباس اقبال آشیانی، علامه محمد غزوینی تقیزاده قاسم غنی و تعداد فراوانی رو از خود رنجانی و از گروه ها و دستجات علاوه بر علماء دین در کتاب کار و پیشی و پول خب این کتاب ها رو من اینجا ندارم در کتاب کار و پیش و پول از کارمندان دولت، طبقه درس خونده، رمان نویسان و روزنامه نویسان. شکایت کرد در کتاب در پیرامون روان اساتید دانشگاه را زیر سوال برد. در کتاب دین و جهان به شاعران و صوفیان و فیلسوفان و شیعیان و بهایان و شیخان و خراباتیان حمله کرد. در کتاب ایران و اسلام کمونیستی که اسمش رو بردم، تجار و اسناف و کلیمیان را سرزنش کرد در کتاب یک دین و یک درفش چهار دین است کشور را زیر سؤال برد در کتاب در پیرامون ادبیات شاعران تذکر نویسن و شرخ و همشون را مورد ملامت قرار داد در کتاب امروز چه باید کرد مالکی را به باد انتقاد گرفت در کتاب سرنوشت ایران که خواهد بود یک بار دیگر از حزب توده بهزشتی یاد کرد همچنین مجلس چهاردهم را دوباره به باده انتقاد گرفت و فرقه دموکرات آزربایجان را به شدت تقبیه نمود در کتاب در راه سیاست یک بار دیگر با یک بار دیگر با ایلات و اشایر در افتاد در کتاب افسران ما ارتش رضاشاهی را با تیغ تیز قلمش مورد نقد و تحقیر قرار داد از فساد بین افسران سخن گفت دزدی اسبهای ارتش به وسیله نظامیان را مطرح کرد سرلشکر یزدان پناه سرلشکر نقدی سرلشکر بوزرجمهری، سرلشکر احمد نخجوان سرلشکر معین سرلشکر محتشمی سرلشکر زرقامی، سرتیب قادری و سرتیب پوریا را مورد حمله شدید قرار داد در جزوه خداباماست یک بار دیگر به روزنامه نویسان پرخاش کرد همچنین در کتاب دفاعیات حضورتون از کنم که دفاعیات احمد کسوی از سرپاس مختاری که بنده اینجا دارم و پزشک احمدی از خود فروشی و دورنگی برخی از روزنامه نگاران به شدت شکایت کرد به این مطلب اشاره میکنیم که در افتادن کسری با گروه اخیر موجب شد که آنان بعد حاصل چین و ادابت رو با وی پیش گرفتند. اغلبشان در واقعی قتل وی یا سکوت کردند و یا اینکه وقایه را به نفع ملایان تحریف نمودند در نشریاتشون دروغ نوشتن بر حلیق کسوی در اینجا لازم میدونم از بینندگان عزیزم بخواهم که اگر کسی میخواهد راجب قتل کسوی مسائل امقی و مستند رو مطالعه کنه به کتاب استاد ناصر پاک دامن مراجع بکنه قتل کسوی در این چهارچوب بهترین کتابی است که بنده خوندم و برخورد کردم سخن بخش بیست و هم در اینجا هر چند که طولانی تر بود به پایان میرسه امیدوارم که در بخش بیست و هفتم بیننده خوبه این برنامه باشید با سپاس از شما